باب إصلاح ذات البين حدثنا صدقة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سانب بن أبي الجعد عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة پنجه و درس است درسای های صحیح در مفرد سد دومین باب از عباب صحیح در مفرد امان بخاری رحمه الله و غفر الله بسکن فسیح جناته باب و ذات الوین بحثای قبلی بحث دروغ مسلح تامیز برای اینکه جدایی بین زن و شوهر پیش نیاد برای اینکه بین بین دوتا برادر ایمانی اصلاح بکنیم و, و در جنگ که مجوزش را رسول صلی الله علیه وسلم رخصت داده خب بختی رسول صلی الله علیه وسلم مجوزه یک کاری را بدن که در اصل شریعت حرامه از باب رخصت ما انجامش بدیم برای اصلاح بس قضیه اصلاح یک مسئله بسیار مهمی هست الله متعال اونقدر ارزش داره که به ما اجازه داده مرتکب حرام بشیم خاطر اون اصلاح ذاته بید سيسد و سبومين حدیث از حدیث سهیه در مفرد حدیث ابو الدردار رضی الله عنه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم فرمودا الا انبئوكم بدرجة افضل من الصلاة والصیام والصدق الا انبئوكم نبأ خبر اخباره اعلام, إعلام ابلاغه بيتون ابلاغ نکنم نگم بدرجة افضل من الصیام والصلاة والصدق باون چیزی که پوداشش اجرش جایگاهش از نماز و روزه و صدقه بالاتر جایگاهش فضیلتش افضل نزد الله پاداش بیشتری داره وزنی هست برای خودش سنگینی میکنه در ترازوی اعمالت بیشتر از نماز بیشتر از روزه بیشتر از صدقه یعنی میگه میشه یک عملی باشه که از نمازی که سجده و رکوع الله جل و علا درش است که در آسمان هفتم فرض کرده عملی از نماز بهتر باشه قالوا بله به ما بگو چه عمله رسول الله یعنی که قد فزیلت داره این قد بزرگه قال الصلاح ذات البین من و تو با هم دیگه خوب باشیم الله اینو میخواد خوب بودن من و تو با هم خوب بودن من و تو با هم نزد الله خیلی با ارزشه ارزشش از نمازت از روزت از صدقت بالاتره چون این نمازت الله خواهد اومد چون این نمازت پذیرفته نمیشه صدقت پذیرفته نمیشه اگر بین تو و برادرت جدایی باشه کدورت باشه کینه باشه بغض باشه جدایی و اون فساد باشه اون دو تا برادر خسم همدیگر باشن با همدیگر دشمنی بکنن خب این الله دوست نداره بغضش داره علا و نبوکم ای علا و اخبروکم به درجت نفضل من السلام س... من السلام والسلام والصدق علا یه قید اینجا گذاشتن علمو. گفتن که مقصود از این نماز و این روزه و این صدقه نماز فرض نیست هیچ عملی موازی نماز فرض نیست مقصود نماز نافل است آیا بهتون خبر بدم عملی که از لحاظ فضیلت از اون نماز سنت برتر بهتر فضیلتش بیشتره. چرا علما اومدن اینجا این پرانتز باز کردن؟ گفتن این نمازه نمازه فرض نیست و این روزه روزه فرض نیست. دلیل کجاست؟ گفتن قرینه صدقه. چون صدقه اصبر چیه؟ بر نافله بوده نشه. الا اینکه صدقه مقصد و مراد زکات باشه. پس میگن این قرینه دلیل بر اینه که اینجا این عمل مقایسه شده با یعنی اصلاح ذات البین مقارنه شده با نمازهای نافله و های نافله و صدقه خب رسول الله صلی الله بهشون میگه که بگم بهتون چه عملی قر فضیلت تر از یعنی فضیلتش بیشتر از نماز نافله حالا مقیاس بران باز کردیم که گفتیم علاما باز کردن به اون قرینه ای که گفتیم تو حدیث است از روزه هم هم تو صدقه هم میتوه گفتن آری رسول الله صلی فرمودن صلاح ذات البین صلاح یعنی اصلاح ذات البین یعنی دو تا برادری که از همدیگر جدا شدن رویگردان شدن با همدیگه خصومت دارن دشمنی دارن بین اونها اصلاح بکنیم. الله اصلاح را دوست داره الله برادری و وقت را دوست داره. الله میخواد ما با هم دیگه یک دست باشیم مثل اونمومیفیتویم و ترحمیم که مثل الجسدی الواحد. باید یک دست باشیم خصاساصلن انگشت دو تا دست رو تو هم فرو میبریم میگه و شب بین اسابه اینطوری باشید محکم. جدایی خوبی اوده. بدب الله بغزش داره الله میخواد شما یک دست باشید یک پارچه باشید هم دست باشید هم دل باشید هم درد باشید ادش تک منه عضو تداع سایر الجسد بالسهر والحم اگر از بدنت از سنت رنجید بقیه اعضای بدنت برنجن به خاطر اون شد رنج برادرت رنج تو باشه پس فضیلت بالای برخوردار اون اخوت اون برادری اون مبدت اون دوستی اون مهربانی که باید بین ما مؤمنین باشه، عجر و فضیلت بالایی داره. و در کنارش گناه و معصیت بزرگیه، فساد ذات دو به همزنی، نمامی، خبرچینی، رسول صلی الله علیه و می فرمایانه. فساد و خرابی، میان دو نفر، چیه؟ حالت هست. حلق، یعنی تراشیدن موها با تیغ، الحالقه یا الماحیه والمزیره للمثوبات والخیرات، خوبی ها تو اعمال نیکت رو عزت میتراشه نابود میکنه دو تا مطلبه دو نفر دو نفر با همدیگر خصومت میکنن جدایی بین دو تا برادر پیش میاد برادر ایمانی و چه برادر تنی خصومت پیش میاد این خصومت این دو نفر که صلح نمیکنن اعمالشون پذیرفته نمیشه اعمال خوبشون حالا خواهد مته گفته و اون کسی هم که میاد وسط افساد میکنه اون شخص جرم جنات سنگینی هم داره عملش افساده این عملش با این افسادش حسنات خودش را از دست میده حالقه هست این کار اعمال نیکت را نابود میکنه. اون اعمال نیکی که در روز قیامت تو لازم داری که در کفه ترازوی خوبی هات باشه ترازوی اعماله یک طرفش اعمال بدت یک طرفش اعمال خوبه وزنه میشه اعمال خوبت را نابود نکن با افساد اصلاح کن بدون که خراب کردن و رابطه بين دو نفر انشنين عقوبة سخت رو دار پيداره رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرميان در رواية ديگر و اياكم والبغض ف انا هي الحالقه البغض تباغذ برحزار باشيد از انك بغض هم ديگر داشت بجوء ايجاد بغض بکنید لا اقول لكم تحلق الشعر نمیغم که مهاتر و میتراشه ولكن تحلق الدین دينتون رو میتراشه دينتون رو میتراشه اینا هشدارها هست و تذکرات رسول الله صلی الله علیه و سلم. والا میاد چه موقع ما اجازه داریم که ارتباطمون رو با یک نفر قطع بکنیم؟ خواهد ان شاء الله. استثناء داریم یک جای اجازه داده شدیم. ولی اصل بر اینه که نباد جدایی باشه بین دوتا تا قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنا سفیان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضی الله عنهما فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم قال هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم 304 من اثر از اساري كه بخاري رحمه الله وغفر له دار كتب هذا منفرد شميره از عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايه است كه تفسير فرمودي الله جل وعلا اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم تقوى الله داشتش بشي و بین خودتون اصلاح بکنید میگه هذا تحریج من الله علی المؤمنین میگه این آیات رو همینطوری از کانال شرد نشید این سختیری الله بر شما مؤمنین سخت گرفته اتقوا الله با تقوا داره شروع میکنه هذا تحریج یعنی یک سختیری از طرف الله بر شما ان یتقوا الله و ان یصلحوا ذات بینهم یعنی تقوای الله رو داشته باشن و بین خودشون اصلاح بکنن الله داره تذکرتون میده دار، یادآوری داره بهتون میکنه خیلی مسئله مهمیه یک هشدار الهیه بر ما که میان خودمون اصلاح بکنیم شما شاید انعکاس این دوتا روایت در زندگی خود رو شاید کمتر دیده باشید شاید در یک زاویه تنگ خانوادگی و دوست رفاقت مدرسه ای بکنید و اون از شما قهر بکنه یا تو خونه از خواهرتون قهر بکنید یا برادرتون با شما قهر بکنه تو بس خانواده پسر دایی و پسر عمو و یا خاله ها و عمه ها و در این حد و حدود شاید ذهنیتتون باشه بدترین نوع این ذات البین بین اهل علمه وقتی افساد میشه وقتی که چهار تا طلبه میان افسادش میکنن و سعی در فساد میکنن و اینو ما باش دست و پنجه کردیم. گاهی ما تعمه میشیم و نمیدونیم پشت دستی ما میزنن فلانی پشت سرت حرف میزنه تا اینکه تو سر اصرارش رو فاش بکنی هم همزنی میکنه جای دشمن استفاده میکنه از این در وارد میشه برای اینکه که تو کسی را به باد بیدی جای دشمن افرادی را از عمد میفرسته یا جای تظویر میکنه صحبتت را خیچی میکنه ج سخانی که نگفتی بهت نسبت میده مینیویسه. دست به دامن هر چی میشن برای افساد، برای خراب کردن، دشمنه. کدوم عالمی که بی‌خطاست؟ هر عالمی شاید یه جای لغزشی داشته باشه. هرچند که لغزش تا دا لغزش داری. یه جا لغزش اون شخص اهلیت علمیش داره اجتهادی کرده، یک مسئله فقهیش اشتباهی داشته. جای اشتباه عقیدتیه. شاید بین خودش و الله اون شخص عز داشته باشه ما بیان حق را میکنیم میگیم رد میریم نووی اشتباه کرده در بعضی از صفات ابن حجر هم همین تو برخلاف منهج صحابه بوده در مسئله قضا و قدر و الى آخر عالمه شاید پاش بلغزه ولی معهل بوده در اشتهاد یه جایی شخص نه اهلیت علمی نداره میاد اشتهاد میکنه وظیفه ما هست تحذیر بدیم مثل رسول سرسان از خوارش تحذیر بده. یا اگر زنده باشم امسال این اگر بخوان خروج بکنن مثل قمعات نابودشون میکنم لا قتلن نم قتل عاد <تصفيق> به خب تحذیره وش داره از روند یک فکر یک شخصی با یک فکری آلوده و خراب قاتی کردن این مسائل با هم دیگه سبب بحران میشه سبب رویگردانی ما از همدیگه میشه بغض کینه و کدورت این مسائل نیاز به تعنی داره نیاز به بینش داره چشم باز داره خصوصا قضیه رد رو دود، خصوصا قضیه نقد عالمی عالمی دیگه رو شاید نقد بکنه هر نقدی اسقاط نیست هر نقدی تجریح نیست فرب حامل فقه الى من هو افقه من خیلی از مسائل هست شما از من داناترید اصلاحش میکنید این وظیفه هست باید بگید باید اصلاح بکنید این نقده انتقاد انتقام نیست من باید به دل بگیرم باید خصومت داشته باشم با اون کسی که به من رو به من میگه هدیش میکنه به من بالحکس من با سرش ببوسم و دستش ببوسم که داره رفتار من رو اصلاح میکنه حرف من رو درست میکنه انتقاد انتقام نیست ما از علمامون اون چیزی که یاد گرفتیم مثل شیخ عبدال محسن عباد محدث مدینه که شیخ خالبانی هم ازش تمجید و تعریف میکنه و به عنوان یک برادر ازش یاد میکنه چیزی که یاد گرفتیم در فتنه هایی که میشد دو با همزنی میکردن. یک حرفی رو از استاد شیخی میشنیدم میبردم پیش شیخ فلانی شیخ فلانی به جایی که بیاد نصیحت سری بکنه نصیحت نافذی میومد می علنیش میکرد زنده است حالا یک طرف مرده تو میگه آقا نووی اونجا اشتباه کرده وظیفته نه اون شخص زنده است میتونه اون چیزو اصلاح بکنه میتونه اصلاح بکنی موقف پیش می بین دو تا دعوتگر و معمولا این مسئله در رده های بالا پیش نمیومد. یعنی وقتی که البانی زنده بود یا بن باز زنده بود یا ابن عثمی زنده بود یا مقبل واطعی زنده بود این مسائل پیش نمی اومد اینا زنده بودن هایی برای خودشون بودن در اون بره زمانی که بودن البانی انتقاد میکنه سخت از شیخ بن باز انتقاد میکنه وقتی که سؤال میشه تو کتابش هم مینویسه کتاب صفات سرات روش نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که بحث دست بستن بعد از میکنه البانی رحم الله میگه هذه بدعه نجديه جاي میگه بدعتون بازیه این بدعت بنبازه بدعت نجده. اهل نجده اونا این بدعتو آوردن نگفت که بن باز مبتدع گفت این کاری که بن باز انجام میده و این چیزی که بن باز میگه سنته سنت نیست بدعته با توندی میگه, میگه بدعتون بازیه این نوآوریه بن باز خیلی بودن از الله بهشون برخورد بود که چه حق داره الباني بیاد از بن باز انتقاد بکنه کی آلبانی کاره است آلبانی پیش کی خونده آلبانی آلبانی میگه فقیه، آلبانی میگه عقیده خونده آلبانی میگه حنبلی آلبانی میگه اہل حدیث و ال آخر غرور کبر یکسری موقف های بیجا خود بن باز رحمها الله تا وقتی که زنده بود میگفت که آلبانی مجدد در این عصر اگر قرار باشه مجدد باشه مجدد این عصر چنانچه رسول ص صل در هر قرنی مجدده مجددی هست؟ البانی مجددی در این عصره تعریف یا نه؟ تمجیده یا نه؟ با وجود که اون سخت البانی انتقاد ازش میکنه همچین در مسئله نقاب که آیا واضبه یا سنته برینشون اختلاف بود عنوان کتاب تون بود کتاب البانی که نوشت در رد علمای نجد الرد المفهم فهم چیز غاله ردی سیاه کننده روشون سیاه میکنم این همه اینا برداشت میشه هست. عنوان کتاب که خود کسانی که با البانی بودن مثلا مشهور نقل میکنه از شاگردینش و دیگران میگه که وقتی که البانی اومد به ریاض به باز میره به استقبالش همون شیخ حمود تویجری و شیوخ دیگری که رد داده بودن بر البانی و البانی بر اونها رد داده بود مورد بودن به استقبالش به پذیراییش اصلا انگار که بینشون هیچ رد و ردودی نبوده اینا اهل علم درکشون بالا بود ساعت صد داشتن سینه‌شون به هم دیگه باز بود الا نشق لک صدرک انشراح سط داشتم. جایی ما این انشراح سط را از دست میدیدیم دلهامون تنگ میشه دلهامون بسته میشه دیدمون تنگ میشه زاویه دیدمون اون صفا و صمیمیتی که بین اهل علم قبل از صفافات اینها بود و بعد از اون اون اختلافااتتی که شد اون شقاقی که شکافی که میان اهل علم وجود اومد قابل قیاس نیست. والله خیلی سنگینه که بین اهل علم شکاف باشه. علما نسبت به همدیگر. بغض و و کدورت و خصومت داشته باشن والله این سنگین از این انسان نمی رنجه که یک شخص مبتدعیه گمراهیه رد برش داده میشه بلکه آدم خوشحال میشه گمراه رد داده میشه برش به خاطر این کسی از اون راه اشتباهش به نکنه ولی که یک عالمی اسقاط بشه اون احترام و تقدیری که ما بهش معموریم شکسته بشه والله این خیلی بردل, سنگینه. خیلی بردل سنگینه که راحت با یک کلیپی با یک صدایی، یا با یک نوشتنی با یک ردی انتقادی یک عالمی مساقط بشه من چیزی گفتم دردی هست که من تو این 20 سال بعد از وفات این خصوصاً چهار عالم بزرگ شیخ مطلبه واتعیب شیخ بن باز و ابن عثیمین و آلبانی دیدم و چشیدم اینها مرجع بودن مرجعیت داشتن بین طلاب و بین اهل سنت یه چیزی اینها میگفتن عالم به تکون در میومد همه گوش فرا میدادن منتظر بودن اینا چی میگن؟ موقف اینها چیه؟ با رفتن اینها از بسک اومدن تازه به دوران ها شیطنت کردن سال سلمان عوده و غیر مردم از اهل علم فاصله گرفتن. از اون فوزانش از اون شیخ زید متقلی و شیخ احمد نجمی و دیگران از اهل علم روزی رفته بودیم از شیخ زید الله رحمتش بکنه و قبلش الله نورانی بکنه. چند تا طلبه بودیم رفته بودیم پیش شیخ گفتیم شیخ چند میخوان بخوریم. خیلی خوشحال شد. از صبح بعد نماز صبح نشست تا شب پیش ما از خوشحالی روزی که خواستیم از پیشش بریم شروع کرد به گری که شیخی که 80 اندی سال داشت روز اول خیلی خوشحال شد که هنوز خیر در امت و طلاب علمی هستن که دنبال علم روزی که خواستیم از پیشش بریم نارحت و شد گفت که دورانی طلاب می اما بر به علم ولی الان اماش دنبال قیر و قالن فلانی گفت فلانی گفت دنبال حیز نیستن دنبال تفسییر نیستن دنبال کتابی اعتقادی نیستن. فقط دنبال تکفر حکقامامن خروج برعل حکامن دنبال سیاستن دنبال قیر و قالن تله وق را از من گرفته با اون شیتا طائ که کردن اون اختلاوادی که انداختن اینو گفتن به خاطر که بدونید ذات بنی چی؟ چرا الله اینجنین سخت میگه و تق الله واصلن حظات بینکن. بح که انسان مغول میشه به حاشیه اصل رها میکنه وقتی که احسان مشغور میشه به قیل و قال به بدعت و به معصیت و به دنیا میچسبه از ها میشه قرآن رها میشه کجا تفسیر صحیح از قرآن خونده میشه کجا شرح درستی از حدیث به مردم خونده میشه بازگو میشه چقدر از اون کتاب های درست و صحیح نشت میشه به میان مردم خرافات ها زیادن از کارها، ها اوراد ها از پاکستان میاد از هندوستان میاد چهل گنج و پنجه گنج و صد گن دروغ با هم دیگه قاطی کردن میدن به خورد مردم کجاست اون از کار صحیح کناش بشه بیان مردم کجاست از اون های صحیح با ترجمه های درست با شرحی درست مردم بخونن چرا نیست چرا نبوده به خاطر اینکه اون حنفیش موقف گرفته بر ضد شافعی شافعیش موقف گرفته بر ضد حنفیش این بر این ها رد میده اون بر این ها رد میده الان کمرنگ تر شده قدیم ها بیشتر بود حتی تا جایی که من یاد دارم اگر یک حنفی نماز میمد بخونه تو جزیره قنوت صبح اگر نمیخون فرن میگفتن اعاده بکنید حتی شده خودم نماز خوندم اهل و مسجد قنون نخوندم اهل و مسجد گفتن که اعاده بکنید که این نمازش درست نیست اینها شحناست این شراح ساد نیست اینها تنگدلیه سخدلیه اینها کدورت، اینها کینه هست اینها اینا نیست، این شراح بین نیست این فساده. به جایی که مردم بشینن از سیرت رسول الله صلی الله علیه و بخونن از کلام و سخن الهی بخونن هموغمشون شده فلانی اینطوری گفت فلانی اونطوری گفت فلانی قنوت قبول داره فلانی قنوت قبول نداره قنوتو گرفتن یک مسئله اختلافی که تو مذهب تو مذهب شافعیت سنته واجب هم نیست فلان شیخ قنوت نمیخونه همه چیزش طبق مذهبه فقط یه چیزش مردم به این چسبیدن چیزی از عقیدشونو میدونن چیزی از قرآن هم مدنان إنها خلالة إنها فسادهاي هاس كما بعد إسلاحش بكوني بعد دنبال إسلاحش بشي قال المؤلف رحمه الله باب الطعن في الأنساب حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبتان لا تتركهما أمتي النياحة والطعن في الأنساب سادو شاسو سبومين باب از ابواب صحيح اداب مفرد امام بخاري رحمه الله باب الطعن في الانساب اون شيزي كو مده اس در نسبة كسي كسي بخودش اجازه بده تعنى بزانه در اصل نسب كسي سادو فانجومين حدیث اس حدیث بحرير رضي الله عنه غفر له و عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرس رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرموين شعبتان لا تتركهما أمتي النياحة والطعن في الأنساب شعبتان دو طاقته دو طاعمال از أعمالي كأمتهم رها نميكونا إن خبري از أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1400 سنة همچنان هاست تبقى وان شيزي كأخبار داده بيون دو طاعماليا از بين أعمال كأمت رها نميكونا أوليش نوحي خوني كأز أعمال جاهلية جاهلیت این کارو میکردن، نوه خونی میکردن و طعن فل این که در اصل و نسب کسی تو طعنه بزنی، تو تحقیرش بکنی به خاطر نجادش، به خاطر عرقش، به خاطر ایر و تبارش چون بلوچه، چون افغانه این طعن در نسبش، در اصلش، در نجادشه در ریشش حق نداری تو سری بزنی به کسی به خاطر اون نجادی که الله انتخاب کرده، اختیار کرده که اون چه نژادی باشه. انتخاب خودش نبوده که هندی باشه یا پاکستانی باشه یا ایرانی باشه انتخاب خودمون نبودیم ما زدن در اصل نسب کسی و تحقیر شخص بر اون اساس نقد و انتقاد بر خالق یکتا که آفریدگار خلقه الله هست که آفریدگاره و او رو آفریده و انتخاب کرده که کجایی و از چه پدر مادری باشن پس تحقیر کردن، انتقاد کردن، طعنه‌زدن بر کسی به خاطر اصل نسبش، نجادش، قومیتش کبیره ای از گناهان کبیره است. گناه بسیار بزرگی از اعمال جاهلیت. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و در حدیث دیگری در صحیح مسلم داریم که میفرمایند اثنتان فی الناس هما بهم کفرن، الطعن فی النسب والنياحه علی المیت. یعنی این قد سخت. رسول الله صلی الله علیه و آله بازگو می‌کنند. دو تا عاملا از اعمال کفر عملی که کفره اولیش نوحخونی چون اعتراض بر خالقی که اون نفس را از اون شخصی که زنده بود گرفت لکل اجل این کتاب اجلش را الله گذاشته بود کی باشه و روحش را کی ملک الموت از تنش جدا بکنه تو نوحخونی میکنی انگار اعتراض داری بر اون خالقی که اون جان را از اون تن جدا کرد اون روح را از اون تن جدا کرد حرام تو خونی بکنی حرام تو تعن در نسب کسی بزنی و بعضی ها گفتن هما بیهم کفر این اعمال کفرن چون سبب کفر میشن سبب این میشه که تو در کفر اکبر بیفتی و بعضی ها گفتن نه مقصد از این کفر کفر نعمته و بعضی گفتن نه مقصود این که اون شخص این دوتا گناه را استحلال بکنه عملش کفر اکبره استحلال بله کسی مستحلش بشه بگه, بگه که من تعنیم میزنم ولی بخواد خدا و رسولش من منعشم بکنم مستحلش کافره ولی که اون کسی که حدیث را میدونه میدونه چینین حدیثی ثابت داریم صحیح داریم ولی با این وجود به خودش اجازه میده که این چینین گناهی مرتکب بشه این شخص دوچار گناه ای شده دوچار گناه بزرگی شده حالا چه بخوام بگیم کفران نعمت باشه چه بخوام بگیم از اعمال کفار باشه از اعمال جاهلیت که عقوبت سختی در پی خواهد داشت این جرب و این گناه تحقیر لغت و تحقیر قومیت یک چیزه زبان کسی لحجه کسی را مسخره و ریشخند بگیری خودش که پدر مادرش انتخاب نکرده که لهجهش اونطوری باشه الله خواسته که تو کجا به دنیا بیای و لهجت چطوری باشه به لهجه کسی اعتراض بر خلق فريد جارة. في السنة صلى الله عليه وسلم يفirma أن في أمتي من أمر الجاهلية. شاوش ذا أمتي مناز جاهليات كحرام وكبيرة كبايرة. لن يدعهن الناس كما ردها شنم يكونا. النياحة الطعن في الحساب أبلين وحقوني توومي. تعني ذا ذا حساب ونسب ولا يفارق كشيكي بين حساب ونسب هذا. والعدوى أجرب بعير فأجرب مائة بعير. انواع اینکه فلان شطور صد تا رو مریض کرده من اجرب البعير الاول شطورها اولی رو کی مریض کرده این مریضی به ذات خودش که نیست که از یک شطور به صد تا انتقال پیدا بکنه انگار که آفریدگاری نداره خالقی نداره والانوا مطرنا بنوعی کذا و کذا والانوار بقدره طلوع ستاره فلانی یا ظهور ستاره فلانی ما این بارشی که داشتیم به سبب اون بوده به جای این که بگن الله اون بارش و اون باران رو فرستاده نسبتش میدن به ستاره به خاطر ستاره فلانی میگه اینها چه از نسبت دادن مریضی به غیر خالقش چه از نسبت دادن نعمت مثل باران به غیر از خالقش اینها از جمله امور جاهلیتی که همچنان در امت بوده و خواهد بود چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دادن سبحانك الله والحمدلله سبحان الله والحمد لله الله على محمد وعليه محمد.